از کتابهای این مجموعه بزرگ که در قفسه است، خانده ای؟ بله. این مجموعه بزرگ تفسیر المیزان است که علامه تبایی آن را نوشته است. فکر کنم موضوع آن تفسیر قرآن است. بله، این مجموعه تفسیر قرآن است و به زبان عربی نوشته شده است به زبان عربی؟ اما فکر میکنم علامه تبا یک ایرانی است بله او اهل تبریز بود و در سال 1981 فوت کرد علامه تبا یک عالم و روحانی مهم بوده است بله بسیاری از رهبران و بزرگان انقلاب اسلامی شاگرد ایشان و امام خمینی بودند آیا تفسیر المیزان به زبان فارسی هم ترجمه شده است بله علاوه بر آن ایشان چند کتاب عربی و تعدادی کتاب فارسی نیز نوشته است همه کتاب‌های ایشان در مورد علوم اسلامی است نوشته های ایشان درباره موضوعات مختلف اسلامی و نیز مباحث فلسفی است. پس ایشان فیلسوف هم بوده است. ایرانیان فلاسفه بزرگی دارند.